عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. امروز ما به کوچکترین انبیای کوچک نگاه خواهیم کرد. ترین کتاب در عهد قدیم. با این حال، همین کتاب کوچک پیغام بزرگی برای من و شما داره. ببینید، ما باید تصمیماتی بگیریم. ما میتونیم تصمیم بگیریم اونطور که خدا میخواد زندگی کنیم یا میتونیم تصمیم بگیریم اونطور که خودمون تصمیم بگیریم. به دقت گوش کنید و ببینید خدا میخواد از این پیغام یاد بگیرید. خداوند یهوه درباره ادم چنین میگوید. از جانب خداوند خبری شنیدیم که رسولی نزد امتها فرستاده شده میگوید برخیزید و با او در جنگ مقاومت نمایید. هان من تو را کچکترین امتها گردانیدم و تو بسیار خار هستی. ای که در شکافای سخر ساکن هستی و مسکن تو بلند می باشد و در دل خود میگویی گویی کیست که مرا به زمین فرود بیاورد تکبر دلت تو را فریب داده است خداوند میگوید گوید اگر چه خیشتن را مثل اقاب بلند سازی و آشیانه خود را در میان ستارگان بگذاری من تو را از آنجا فرود خواهم آورد کتاب یک صفعی و یک بابی اوبدیا با آیاتی که خوندیم شروع میشه. او را میتونیم، کوچکترین نبی انبیاء کوچک بنامیم چون کتاب او فقط یک باب داره کتاب اوبدیا یکی از کوچکترین کتاب کتاب مقدس هست وقتی اوبدیا میگه که مردم در سخراها ساکن هستند و مغرورن و فکر میکنند کسی نمیتونه اونها رو از اون بالا به پایین بیاره و مثل اقاب در بلندی ها آشیانه ساختن منظورش چیه؟ پیغامش اینه که اگر تو در میان ستارگان هم آشیانه بسازی من تو رو پایین میارم بعضی ها برای نقیدند که کتاب اوبدیا پیامی برای روزهای آینده است چون عملا ما امروز صحبت از زندگی در ستارگان دیگه می کنیم. ما صحبت از رفتن به مریخ و صحبت زندگی در اونجا رو می کنیم. مردم ما چونی افکاری دارن بعضی ها برای این باورند که نبوت انبیا خطاب به ما با تمام تکنولوژی و دانشمان هست اونها پیغام اوبدیا رو اینطور طور تفصیل می کنند که اگر به دانش خودت و تکنولوژی خودت فخر میکنی و سعی میکنی در ستارهگان ساکن بشی و فکر میکنی من نمیتونم تو رو پایین بیارم من نشون خواهم داد که تو فقط انسانی و تو رو پایین خواهم آورد. ابدیو از اون صحبت میکنه که در واقع انسان چیزی نیست که خدا نتونه از پسش بر بیاد. کتاب ابدیا بدون اشاره به هیچ تاریخ و واقعه تاریخی شروع میشه. اگرچه کتاب اوبدیا هیچ اطلاعات تاریخی در آیات اول به ما نمیده اما در آیه یازده زمینه تاریخی میده که این نبوت در اون زمینه داده شده. اوبدیا به قومی به نام ادوم اشاره میکنه در آیه یازده و بعد از اون اوبدیا به قوم ادوم میگه در روزی که به مقابل وی ایستاده بودی هنگامی که قریبان انوال او رو قارت نمودن و بیگانگان به دروازه هایش داخل شدن و بر ارشلیم قرآن تو نیز مثل یکی از اونها بودی بر روز برادر خود در هنگام مصیبتش نگاه نکن و بر بنی یهودا در روز حلاکت ایشان شادی من ما و در روز تنگی ایشان لاف مزن و به دروازه قوم من در روز بلای ایشان داخل مشو و تونیز بر بدی ایشان در روز بلای ایشان منگرد و دست خود را بر اموال ایشان در روز بلای ایشان دراز مکن و بر سر است تا فراریان ایشان را منقطه سازی و باقی مندگان ایشان را در روز تنگی تسلیم من ما. زیرا که روز خداوند بر جمعی ها نزدیک است و چنان که عمل نمودی همچنان به تو عمل کرده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشت. برای درک بار موزه اوبیدیا که پیام عمیقی هست شما باید کلمه ادوم رو درک کنید. اگه به سرزمین مقدس برید شاید شهر گل سرخ پترا رو ببینید برای رفتن به اونجا باید از طریق عمان اردن و از اونجا به جنوب شرقی معاب و دریای مرده برید که یکی از به هفتگانه دنیای باستان هست. سی دقیقه آخر مسافت رو باید با اسب طی کنید و احساس می کنید در سرازیری در دررهی به پایین میرید. در دو طرف جاده سخراهای سرخ رنگی وجود دارند که بیش از دویست و پنجاه متر ارتفاع دارند در این صخره ها حفره هایی هست که عملا محل سکونت ادمی ها بوده ادمی ها به غارت و چپاول مردم مشهور بودند اونها مردم را غارت می کردن و بعد به شهر گل سرخ پترا باز میگشتند این نامی هست که امروزه به اون محل داده شده اونها نردبان هایی از تناب داشتند که به وسیله اونها به غارهایشان که در 250 متری قرار داشت صعود می کردن. بعد نردبان ها رو جمع می و فکرشون این بود که آن‌ها ناپذیرند چون کسی نمیتونه به اونها دسترسی پیدا کنه این چیزیه که منظور اوبدیاس وقتی میگه ای که در های صخره ساکن هستی و مسکن تو بلند میباشد و در دل خود میگویی که کیست مرا به زمین فرود بیاورد تکبر دلت تو را فریب داده است خداوند میگوید من تو را از آنجا فرود خواهم آورد اوبدیا این رو میگه چون کسانی بودند که به اون سخرها و ساکنان اونها که در 250 متری بودن نگاه می و با ناامیدی می که عدمی ها رو پایین بیارن عدمی ها معبد هایی که در سخراها کنده شده بودند. شهر پترا به راستی یکی از عجایب دنیا هست اونجا معبدی هست با ستونهایی که از این های سخت و سرخ ساخته شده تمامی مسكنها و معبد ها در این های سرخ کنده شدهاند. امروز همه اونها همونطور که در زمان اوبدیا بودند بودن باقی موندن. شهر سرخ پترا جای وهمانگیزی هست. به اونجا شهر خاموش گذشته مطروک هم میگن. چون کسی در اون زندگی نمیکنه. کنه. عدومی ها کی بودن؟ برای پاسخ به این سوال باید به کتاب پیدایش مراجعه کنید. داستان دو قلوها در شکم رفقه رو حتما به یاد میارید. اسم اونها یعقوب و ایسو بود. این دو قلوها دو نبودند اونو از هر نظر متفاوت بودند نه تنها در ظاهر و رفتارشون بلکه در کل سیستم ارزشیشون هم متفاوت بودند امکان نداشت دو نفر بتونن این همه با همدیگه فرق داشته باشند. ایسو ارزشی برای نخو سادگی و برکات روحانیش قائل نشد برای او احساس تعصف نکنید چون او نخو سادگی و برکات روحانیش رو به کاسه یاش فروخت به ایسو مرد کفرگو میگفتند در عهد جدید به چنین کسانی خارج از معبد یا علیه معبد میگند. ایسو تصویر مردی هست که به مسائل روحانی همیتی نمیده یعقوب تصویر مرد روحانی هست اگرچه یعقوب فردی شیاد و حق باز هست با این حال اون نمونه خوبی از یک مرد روحانی هست یعقوب نمونه واقع گرایانه یک مرد روحانی است، چون او تنها نمونه در دسترس است. هست یعقوب کامل نیست و از کمال خیلی فاصله داره اما تنها چیزی که میتونید درباره یعقوب بگید اینه که اون میدونه چه چیزی ارزش داره و دنبال چیزهایی میره که ارزش روحانی داره اگر به گذشته برگردید و داستان دو قلوها رو در کتاب پیدایش بخونید خواهید دید که در پایان داستان به نظر میرسه که اونها رفتاری دوستانه داشتن اگر سرنخ تاریخی که بهتون میدم بگیرید، نسلی رو که از یعقوب پیدا میشه خواهید شناخت. ما شکلگیری قوم اسرائیل رو بررسی کرده ایم. حال قومی هم از ایسو پدید اومد. قومی که به اون ادوم می و این قوم شهر ادومیها یا شهر پترا رو بنا کردن. این شهر در جنوب شرقی دریای مرده هست که قبلا هم توضیح دادم. ادومیها با نفرت از قوم برگزیده اسرائیل بزرگ شدند. هر بار که ارتش دشمن به اورشلیم نزدیک میشد، ها فرصت را از دست نمیدادند و در کنار ارتش دشمن به اونها کمک میکردند. ها از کشتن لذت میبردند. اونها از نسل یعقوب نفرت داشتند. اونها ضد ترین بشرهایی بودند که تا کنون در روی زمین زندگی کردند. چیزی که واقعا در قلب ابدیو هست اینه. همونطور که قبلا اشاره کردم، اورشلیم در طی یک دوره 20 ساله سقوط کرد. محققین معتقدند که ابدیو درباره زمان سقوط اورشلیم در دوره صدقیا صحبت میکنه. وقتی شهر نابود و با خاک یکسان شد و مردم قتل عام شدند و به اثارت بابل رفتند، وقتی اون واقعی اصفناک روی داد قوم ادوم شادی میکردند. آنها به همراه بابلی ها وارد اورشلیم شدند. ادومیها به ارتش بابلی ها ملحق شدند و به آنها در محاصره اورشلیم کمک کردند. اونها عملا در غارت اورشلیم شرکت داشتند وقتی مردم از فاجعه اورشلیم فرار کردند ادومیها اونها رو دستگیر کرده و تحویل بابلیها میدادند ماموریت ادومیها این بود که سر تقاتوها بیستند و فراریان یهودی رو دستگیر کنن گاهی ادومیها شخصا یهودی ها رو میکشتند چون پسران عیسو از پسران یعقوب نفرت داشتند این کمک میکنه که بفهمید ابدیو وقتی این موعظه رو میکنه چه چیزی مد نظرش بوده جایی در موعظه ابدیو هست که او هشت بار میگه این کارو نکنید بر روز برادر خود هنگام مصیبتش نگاه مکن و بر بنی یهودا در روز حلاکت ایشان شادی من ما و در روز تنگی ایشان لاف مزن و به دروازه های قوم من در روز بلای ایشان داخل مشو و تو نیز بدی ایشان در روز بلای ایشان منگر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 بل این عبارت رو میشنویم که بسیاری از انبیا به کار بردن روز خداوند. ابدیا بسیار با شور و اشتیاق و با سخنوری موعظه میکنه و میگه وقتی بابلی ها به قوم من غلبه کردن این روز خداوند برای قوم من بود. چون قوم برگزیده من اسرائیل باید روز تنبیهشون رو میدیدند. قوم من گریه هاشون رو کردند اما شما هم روز خودتون رو خواهید داشت. وقتی روز خداوند بر تو واقع بشه یری تو هم کمتر از اونها نخواهد بود نابودی بر تو هم خواهد آمد اوبدیا نبوت میکنه که شما دیگر یک قوم نخواهید بود اوبدیا حتی پیش بینی میکنه که چه کسی ادومی ها را نابود خواهد کرد ابدیا میگه هم پیمانانی مثل بابلیها ها که ادومیان به اونها اعتماد دارن از طرف خدا ملزم میشوند که ادومی ها را نابود کنند اگر تاریخ باستانی رو بدونید میفهمید که کتاب ابدیا است که تحقق یافته ما نمیدونیم چه زمانی این نبوت شده احتمالا درست همزمان با سقوط اورشلیم بوده اما یقینا میدونیم که تمامی اون نبوت تحقق یافته پنج سال بعد از اینکه که اورشلیم ها رو فت کردند رفتند و عدوم رو هم فت کردند. بابلیها ها را رو به کلی نابود نکردن اما اونها رو شکست دادن بعدها حدود 163 قبل از میلاد مکابی ها آمدند و بر ادوم غلبه کردند بعد در سال 63 بعد از میلاد رومیان بر ها غلبه کردند حالا وقتی رومی ها بر ادومیان غلبه کردند کاری انجام دادند که به خاطر اون معروف شدند اونها می‌دونستند که ها از یهودیان نفرت دارند پس اونها پادشاهی دست نشانده از ها بر یهودا قرار دادند هیرودیس بتنام همون شخص بود یادتون باشه که هیرودیس یک عدومی بود که دستور قتل آم بیگناه رو صادر کرد. او یکی از عدومی بود. رومیان دوست داشتند که بدترین دشمن یهودیان رو زیر نظر خودشان فرماندار یهودیان بکنند چون می که بدترین دشمن اونها در هیچ موردی کوتاه نخواهد اومد. هیرودیس این هیولا توسط رومیان به فرمانداری یهودیان منصوب شد. در هفتاد میلادی وقتی تیتوس امپراتور رومی اورشلیم رو غارت کرد بعد از آن به ادوم رفت و تمامی ادومیان رو از صحنه روزگار محف کرد تنها چیزی که امروز در شهر پترا باقی مونده شکاف ها و سوراخ هایی درون سخره هاست شهر خاموش و متروک گذشته این تنها چیزیه که از ادومی ها باقی مونده و نشون میده که نبوت اوبدیا عملا به انجام رسیده و به صورت عملی تحقق یافته، وقتی اوبدیا این سوال رو مطرح میکنه که کیست که مرا به زمین فرود بیاورد؟ جوابش این بود، خدا تو را پایین خواهد بود. و از یهودیان استفاده خواهد کرد، از پسران یعقوب، از همپیمانانت، از متحدان تو، کتاب اوبدیا داستان تاریخی مهیج و مثال انگیزی از انجام نبوت هاست. نکته اصلی این کتاب یکبابی کتاب مقدس چیه؟ کاربورت عملی مهم زیادی در پیغام اوبدیا هست. اولا فکر میکنم پیغام اوبدیا رو میتونید در رومیان 8-28 ببینید. میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او فراخوانده شدند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در می میباشند. همونطور که در ابرانیان 12 و قسمت های دیگر کتاب مقدس دیدیم که به ما میگه فرزندان خدا نمیتونند با گناه و خطاکاری نجات پیدا کنند اگر شما فرزند خدا هستید من خبری برای شما دارم. شما نمیتونید با گناه نجات پیدا کنید. دیگران میتونن در گناه زندگی کنند و هیچ اتفاقی براشون نیفته اما شما نه. چون شما فرزند خدا هستید و به خاطر گناه تعدیب خواهید شد. قوم خدا وقتی گناه میکنه تنبیه میشه. کاربرد عملی شخصی پیغامی هست که ما در تعهد یهودا میبینیم. ادومیها از تعهد یهودا بهرهمند شدند. به هر حال وقتی شما میبینید که در معزه عبدی بر عدومی ها تمرکز شده چیزی میبینید که در واقع بیش از تعدیب هست. شما داوری خدا را بر اونها میبینید که به شکل انقراض کامل بر اونها میاد. به لحاظ کاربردی شخصی چیز دیگه ای هم میبینید. کتاب مقدس میگه راه خطاکاران راه سختی هست. مجلی پلی یکبار یک بار دروغ بزرگی نوشته بود. پیام ناشرین این بود که اگر مردم دنیا با اون زندگی کنند و طبق اون رفتار کنند، موفق خواهند شد. اونها بر این باور بودند که چون اشخاصی شاد و موفق هستند و این دروغ مستقیمی از اعماق جهنم بود. کتاب مقدس میگه راه خطاکاران راه سختی هست. خطاکاران کسانی هستند که طبق کلام خدا زندگی نمیکنند. خطاکاران کسانی هستند که کتاب مقدس رو کنار گذاشتند بنا به گفته کتاب مقدس زندگی اونها سخته چون نهایتا باید عواقب کارهاشون رو ببینند عواقب کارهای اونها همیشه سبزیهای تلخه پس به خطاکاران قبطه نخورید وقتی میبینید که ادوم توسط خدا داوری شد میفهمید که راه خطاکاران راه سختی هست. تفاوت زیادی بین تجربه تنبیه یهودا و نابودی کامل عدوم در روز داوری خدا بود. در مضمور یک پیغامی هست. یادتونه وقتی مزامیر رو بررسی می کردیم به اون نگاهی انداختیم. اون پیغام این بود. دو مرد در صحنه هستند. شما کدوم یک هستید؟ مرد برکت یافته تمامی برکات روحانی رو داره. بزرگترین برکت او اینه که در راه گناهکاران اینجا و اونجا نمیشینه، اما مرد دیگر یا خطاکار یا مرد خدا خداشناس در این دنیا زندگی سختی داره آخرین چیزی که در مورد مرد خدا نشناس در مزمور یک خوندید این بود و هلاک خواهد شد ما در نبوت اوبیدیا مقایسه شگفتانگیزی از مرد روحانی و از مردی که امروزه بهش سکولار میگن میبینیم کتاب مقدس مرد سکولار رو عادی خطاب میکنه کاربرد عملی شخصی نبوت اوبیدیا همون کاربردی هست که در مزمور یک دیدیم آیا شما پسر یعقوب هستید یا پسر عیسو آیا مرد خداشناسی هستید یا خدا انتخاب با شماست. ما می بینیم که ابدیای نبی مرد روحانی و مرد سکولار رو با داستان یعقوب و عیسو برای ما به تصویر می کشه. این دو قلوها که اونها رو در کتاب پیدایش دیدیم که به تصویر کشیده شدن، مقایسه شدن. و در نبوت ابدیا با هم سنجیده شدند کتابی که کمتر از یک صفحه در اکثر کتاب مقدس ها به خود اختصاص داده. اوبدیان نشانه نشانه‌ها را از عواقب به کار میگیره که این دو قلوه های کاملا متفاوت رو با هم مقایسه کنه. از زندگی آن دو دو قوم پدید آمدند که مثال بارزی از مرد سکولار یا دنیوی و طرز زندگی او و از مرد روحانی با ارزش های روحانی و طرز زندگی او به دست می ده. ما کاربرد شخصی و عملی کتاب اوبدیا را ملاحظه کردیم و باید بدونیم که این کتاب کوچک تحقق وعده ابراهیمی هم هست وقتی خدا این قوم منحصر به فرد رو به وجود آورد به ابراهیم قول داد به کسانی که تو رو برکت بدهند برکت خواهم داد و به کسانی که تو را لعن کنند لعنت خواهم کرد وقتی ادومی‌ها ضد یهودی شدند و از سقوط اورشلیم و بدبختی یعقوب شادمانی کردند خدا اونها رو لعنت کرد اقوام مختلفی هم مثل آدولف فیتلر در رایش سوم که خاکستر نشین شدن و از بین رفتن به این دلیل بود که به قوم برگزیده خدا جفا کرده بودند. در فیلم مخفیگاه وقتی پدر بزرگ پیر که ظاهرا یک خاخام یهودی بود و کتاب مقدس بزرگی در دستش بود از پنجره بیرون نگاه کرد و دید که پلیس مخفی نازی یهودیان رو سوار کامیونی کرده که اونها رو به اردوگاه اسرا ببره پدر پیر گفت حالا او تخم چشمان خدا رو لمس کرده. هیتلر قوم برگزیده خدا را به قتل میرسونه و این پایان هیتلر خواهد بود. عهدی که خدا با ابراهیم بست بارها مثال زده شده. در تاریخ عهد قدیم و در تاریخ سکولار از زمان کتاب مقدس کسانی که قوم برگزیده خدا رو آزار رسوندن نابود شدند. در کتاب اوبدیا برای عدوم همین اتفاق میفته چون اونها پسران ابراهیم، اسحاق و یعقوب رو آزار رسوندن. کاربرد عملی دیگری در کتاب ابدیا هست که بیشتر از کاربردهایی که تاکنون اشاره کردم شخصی هست قلب این پیام اینه به لحاظ کاربوردی عملی مربوط به این دو مرد هست یعقوب و ایسو یعقوب همونطور که گفتم تصویر مرد روحانی هست اگرچه یعقوب کامل نیست اگرچه یک شیاد بود با این حال تصویری از یک مرد روحانی هست یعقوب الگوی ما هست چون او طالب چیزهای روحانی بود و به دنبال چیزهای روحانی میرفت وقتی زندگی یعقوب رو در کتاب مقدس بررسی می‌کنید می‌بینید که او کسی میشه که نام خودش رو به قوم برگزیده خدا میده. مردی رو می‌بینید که زندگیش نمونه و مثالی از یک مرد روحانی هست. وقتی یعقوب تبدیل به یک قوم میشه، اون قوم الگوی ما میشه. یادتونه که آیه کلیدی ما برای کتاب‌های عهد قدیم در اول قرنتیان ده یازده هست. تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و اون اشتباهات رو تکرار نکنیم. تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان خود نزدیک میشه درس عبرتی بگیریم. قوم اسرائیل کامل نیستند اما اسرائیل نمونه و الگوی ما هست. اسرائیل نمونه قوم منتخب خدا هست. چون اسرائیلی ها قوم برگزیده خدا بودن. اسرائیلی ها همچنین مثالی از اراده آزاد هستند. چون اسرائیل تصمیم گرفت که برگزیده نباشه قوم اسرائیل به خدا گفتند که اونها هیچ کدوم از نقشه‌های خدا رو که برای اونها ترک کرده نمیخوان و بدین وسیله اسرائیل مثال و عبرتی برای من و شما شد وقتی که پسران عیسو رو در قوم ادوم میبینید مرد دیگری رو میبینید که برای ما پیغامی شخصی و کاربردی هست عیسو نمونه یک مرد سکولار هست امروزه مردانی مثل رو افراد اومانیست یا ما میگیم این نوع افراد اهمیتی به مسائل روحانی نمیدن اگر نگاهی از نزدیک به زندگی ایسو بندازید چه نوع زندگی رو خواهید دید جواب این سوال زیافت عواقبی هست که قوم ادوم تجربه کردند از ایسو ادوم پدید آمدند ایسو یعنی پشمالو ادوم به معنی سرخ است ادوم نامی بود که به فرزندان ایسو داده شد چون ایسو در زمان تولد سرخ و پشمالو بود شهر پترا جایی که فرزندان عیسو در آن زندگی می‌کردند سخراهای سرخ بود از این رو فرزندان عیسو عدوم خوانده شدند که معنیش سرخ است اگر نگاهی از نزدیک به زندگی مرد روحانی بندازید چه نوع زندگی خواهید دید به لحاظ کاربوردی نتیجه رفتن دنبال چیزهای روحانی چی هست وقتی زندگی یعقوب و فرزندان او رو که قوم اسرائیل از او پدید آمدند پیگیری کنید جواب این سوال رو خواهید یافت. به نظر من این دو مرد متضاد پیامی عملی برای ما از کتاب اوبدیا هستند. یکی از اولین چیزهایی که در مورد این دو مرد می‌بینیم که بعضی از دیدگاه‌های الهیاتی رو پیش می‌آره اینه که این دو مرد هر دو از بطن یک مادر به نام رفقه به دنیا آمدن. به لحاظ کاربردی ها معتقدند که پیام اینجا این هست که انسان درون خودش همیشه این ها رو داره که یا یعقوب بشه و یا عیسو آیات این رو به ما نشون میدن خادمی که با هندی ها کار میکرد به روستایی رفت که بسیاری از اونها ایماندار شده بودند او از سرپرست اونها که یک سال بود ایمان آورده بود پرسید او از چه قراره او جواب داد مثل اینکه درون من دوتا تا سگ هست یک سگ سفید و یک سگ سیاه که دائما با هم میجنگند خادم پرسید کدوم برنده میشه و او جواب داد اونی که من بهش قضا بدم برنده میشه راهای زیادی هست که ما میتونیم مثال بزنیم که ما دو طبیعت دادیم پولس رسول این رو در باب هفت رومیان شهر میده و میگه من مشتاقم که چیزهای درست رو انجام بدم اما هرگز قدرت اینکه کار درست رو انجام بدم ندارم اون نیکی رو که میخوام انجام بدم انجام نمیدم بلکه کار بدی رو که نمیخوام به عمل میارم اگه کاری رو که نمیخوام انجام میدم دیگر کننده اون کار من نیستم بلکه گناه هست که در من به سر میبرد پس به این قاعده کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کاری نیکو انجام دهم فقط شرارت از من سر میزند باتنن از شریعت خدا لذت میبرم ولی میبینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من میجنگد و مرا اسیر فرمان گناه میسازد یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است من چه آدم بدبختی هستم این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند کی میتونه منو از دست اون آزاد کنه خدا رو به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر میکنم که چنین کاری رو کرده خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناهه با عقل خود شریعت خدا را بندگی میکنم همه ما این قابلیت رو داریم که انواع کارهای روحانی را رو انجام بدیم یا کارهای جنونامیز رو همه ما این قابلیت رو داریم که کارهای روحانی مانند یعقوب بکنیم و در تلاش کسب چیزهای روحانی باشیم اما همینطور قابلیت داریم که مثل عیسو باشیم هر دوی این قابلیت ها در ما هست البته مسئله مهم اینه که آیا شما میخواید طرف یعقوب طبیعتتون رو گسترش بدید یا طرف عیسو طبیعتتون رو به لحاظ کاربردی هر دوی این قابلیت های روحانی در اون کتاب یک بابی در کتاب مقدس وجود داره زندگی یعقوب و عیسو رو مطالعه کنید و ببینید یعقوب چطور تبدیل به اسرائیل شد و ایسو تبدیل به عدوم بحران یعقوب از زمانی شروع شد که او با فرشته کشتی گرفت او تجربه زیبایی داشت که تمام طول شب رو با خدا کشتی گرفت مسابقه کشتی رو خدا شروع می کنه. اما با تهاجم یعقوب خادمه پیدا می کنه می شنوید که یعقوب فریاد یعقوب تا برکتم ندهی نمیذارم بری. اینجا بود که خدا ران او رو لمس میکنه و او لنگ میشه. بعد میخونیم که خدا او رو برکت میده. خدا او رو وادار میکنه با مسائلی روبرو بشه. از او میپرسه اسمت چیه؟ و یعقوب جواب میده یعقوب. بعد خدا میگه من اسم تو رو به اسرائیل تغییر میدم. به عبارت دیگه خدا داشت به یعقوب میگفت یعقوب اگر پیروزی میخواهی باید به درون نگاه کنی تا من هر چیزی که میخوام عوض کنم باید به بالا نگاه کنی تا بفهمی فقط توسط من تو میتونی بعد به اطراف نگاه کنی و وارد ارتباط با مردم بشی خدا یعقوب رو اسرائیل نامید که معنی آن جنگنده هست خدا گفت تو به عنوان یک شاهزاده با خدا با خودت و با انسان جنگیده ای و پیروز شدی این باب مهمی در سفر روحانی یعقوب هست تجربیات ایسو مخالف تجربیات یعقوب هست داستان یعقوب ما رو تشویق میکنه که نزد خدا بیاییم و بگیم خدایا من واقعا میخوام که بر من غلبه کنی و خداوند و خدای من باشی و از تو میخوام بر ایسوی نفس من قلبه کنی که درون من هست گاهی تنها راهی که خدا میتونه این کار رو بکنه اینه که ما رو به یبوق ببره جایی که یعقوب رو برد و ما رو لنگ کنه تا بتونه تاج بر سرمون بذاره. من ایمان دارم که بهترین های ما درونمون قابلیت های ایسو رو داریم، مخصوصاً در انگیزه هامون. اگرچه قابلیت های بسیاری از یعقوب رو هم داریم، همه ما هر دو قابلیت رو در انسان درونیمون داریم. حالا شما چطور در نبرد بین سگ سفید و سگ سیاه پیروز میشید؟ گاهی شما باید به یبوق برید تا خدا بتونه شما رو لنگ کنه و تاج بر سرتون بذاره و بتونه کمال یعقوب رو به شما بده و نه عاقبت ایثور رو باز هم میبینید که پیام بزرگ ابدیا اینه دیر یا زود هر کسی باید بر سر سفره عواقبش بنشینه ادوم تصویر بسیاری از چیزهاست مثل کتاب استر ادوم قانون طلایی رو به صورت وارونه به تصویر میکشه. قانون طلایی اینگونه در کتاب ابدیا جا گرفته هر کاری که کردی همون کار برای تو انجام خواهد شد همون کار که تو برای قوم من کردی همون بر سر تو خواهد آمد اگه میخواید کاربرد عملی کتاب ابدیار رو بفهمید سعی کنید کاربرد عملی زندگی این دو مرد یعقوب و ایسو رو درک کنید این رو میتونید از کتاب پیدایش به راحتی بفهمید اونجا که ایسو حق نخو رو به کاسه یاش میفروشه و مرتکب گناهی میشه که بهش گناه ایسو میگی. جوانان زیادی هستند که وقتی نقشه خدا برای زندگیشون مشخص میشه متوجه میشن که نقشه خدا برای زندگی اونها چیه؟ مثلا فرض کنید که خدا جوانی رو فراخونده تا یک پزشک خادم بشه نقشه خدا برای زندگی این شخص اینه که به دانشکده پزشکی بره دوره انترنی رو بگذرونه دوره رزیدنتی رو بگذرونه و سالهای زیادی در دانشکده باشه فرض کنید در جایی در طول این مسیر شاید جایی بین کالج و دانشکده پزشکی وسوسه بیاد دوست دختر او میخواد ازدواج کنه اونا تصمیم میگیرند اگر الان ازدواج کنیم و هر دو کاری پیدا کنیم میتونیم تمام چیزهایی که برای لذات دنیایی نیاز داریم همین الان داشته باشیم اگر این زوج در مقابل این وسوسه تسلیم بشن اونها مرتکب گناه ایسو میشن دیر یازود اونها به اطرافشون نگاه خواهند کرد و اون زندگی به نظرشون کاسه آش خواهد اومد چون اونها را از نقشه کامل خدا باز داشته اوبدیا تمثیل این دو مرد رو نشون میده تا جایی که تبدیل به قومهایی میشند اگرچه اسرائیل به لحاظ روحانی جایی که باید باشه نیست اما روزی به لحاظ روحانی احیا خواهد شد و به گفته کتاب مقدس داستان نهایی یعقوب و ایسو با احیای روحانی اسرائیل نوشته خواهد شد وقتی ببینیم که اورشلیم جدید و اسرائیل مجدداً استقرار یافتن این آخرین باب از داستان مقایسه دوگلوها خواهد بود و همینطور انجام کامل پیام خدا خواهد بود که توسط ابدیای نبی داده شده خب وقت ما به پایان میرسه ولی میخوام شما رو به چالش وادارم شما بر سر صفره چنو عواقبی خواهید نشست آیا مانند عیسو لذات آنی دنیا رو بیشتر از لذات روحانی که ابدی هستند میخواهید یا مانند یعقوب میدونید که کامل نیستید اما در تلاش برای به دست آوردن چیزهای روحانی هستید چیزهای روحانی که ابدی هستند من و شما هر دوی این قابلیت ها رو داریم همونطور که اون سرپرست پیر هندی گفت سگ سفید یا سگ سیاه سگی که پیروز خواهد شد اونی هست که تغذیه میشه ببینید کدوم یکی از این سگه رو تغذیه می کنید؟ عزیز چیزهای زیادی هست که ما میتونیم از کتاب مقدس یاد بگیریم. همونطور که معلممون به ما نشون داده درون هر کدوم از ما این پتانسیل هست که تشنه امور روحانی باشیم و یا تشنه امور دنیایی. دعای ما اینه که این درس ها همچنان که در معرفت و حکمت رشد می‌کنید شما رو در ایمانتون نیز قوت ببخشه. تا اینکه بتونید رشد کنید و بیشتر و بیشتر شبیه مسیح بشید. مثل یعقوب اعتراف کنید که خیلی خوب نیستید و به کمک خدا احتیاج دارید. این هفته به همه بشارت بدید که خدا اونها رو دوست داره و میخواد همه جات نجات بده. تا برنامه بعدی خداوند به شما برکت فراوان بده.